خب در علم قرآن از یک چیزی به نام قریب القرآن بحث میکنید اما یک سلسل قواعد سرفی نحوی بلاقی اشتقاقی اینا هست که دیگه در علم قرآن بحث میکنید در حالی که اینها در فهم آیات موثره. الان مثلا یه بند خدا یه کتابی نوشته حتی حدود اثرگذاری فهم نحوی مفصل در فهم قرآن. یعنی این چه چیزی فایده؟ مثلا مثل اینی که اون لحظه هم گفتیم که اگر یک کلمه‌ای که در اشتراکم بحث می‌کردیم چند تا را داشته باشه و قرآن این واژه رو به کار گرفته باشه رفت ای برای تحدید هم نداشته باشه شما قاعدتا حمل می کنید بر همه معانی. اگر کسی بخواد این کار بکنه باید بره تو دل تفسیرها یعنی یک کسی اگر دو سال، سه سال، چهار سال جون بکنه و تفسیرها رو مطالعه میکنه مفسران قواعدی رو که در تفسیر قرآن به کار گرفتن اینا رو استخراج کنه این میشه یک کار خیلی مهم که یکی از سنویا تقریبا این کار کرده و خیلی مهم نیست قواعد و تفسیر جمعا و دراستا دو جلده حدود هشتاد تا قاعده رو از دل تفسیرهای استخراج کرده یا مثلا یه بند خدای قواعد و ان اندر مفسرین نوشته که اگر دو تا رعی جایی به هم بخورن مفسرین به چی تکیه میکنن و ترجیح میدن این رو به اون قاعده ما آقای توفی یک کلین کاری رو میکرده که این کارو نکرده ولی خب مبارکه دیگه اینکه برای اولین بار به طرف دانش تفسیر حرکت میکنه مهم ابن تیمیه یک کتاب کوچیکی دارد مدام مقدمتون فی اصول تفسیر خب این مقدمتون که اصول تفسیرم همین حالت داره یعنی به اصطلاح قواعد تفسیریه و چیز بیست یعنی مثلا بحث های برو یعنی تعن کننده، شرط کننده این مقدمت ها توی مشکل با همه کوچکی که دارد کتاب بسیار بهمیه و از اون به که الان در در اسلام مخصوصت و وحاوی خیلی حرفاش مطرحه و حرفاش تو بورسه این کتاب بارهای بار چاپ شده و بارهای بار شرخ شده من فقط در کتاب خصوصی خودم گوام کنم تا یا تا ترجم و شرقی تختیب و شر دارم کتاب درسی درمشتاهای جهار عربه حقیقتاً هم کتاب خوبیه کتاب بسیار خوب و روشمن و قاعد من ایمان تقنیه تفسیرم به اسمش هست اینا مال خودش نیست اینا رو از آسانش جعب کردن مثلا این از تفسیر الكبیر هست جلبه ایمان خودش نیست البته ایشون پراکنده پراکنده تفصیرم داره مثلا از صغر قسا داره آیات داره یه تفصیر دیگه این یعنی بازه دیگه, دیگه جمع او ده جلده اینا همه از دل آثار در آوردن خودش تفصیر مستقلی اپیترینیه هیچ جا نمشته ولی این مقدمت که تفصیر رو نوشته که عملا قواعد تفصیره و کار خیلی خوبی هم هست کار مفید و خوندنیه